حتی دیدار آخر شاید رسید از راه بردای یه روزه بهتر بلک هوادارت چون بلدی بخندی با چشم دل ببازیم بارش دل ببندیم <تصفيق> اجوا که قلب سبزه هچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردامو پس فردا بشوکه قلب سبز است هچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردامو پس فردا سلام علیکم حالتون چطوره خوبین خوشین سلامтин برنامه 971 رادیو پس فردا رو امروز یک شنبه با شما اونایی که تکرار مرمر میشنن، دو شنبه میشنن، اوناییم که دانلود میکنن میشنن، هر موقعی ممکنه بشتوند با ما باشید پنجا و پنج دقیقه ی آیندارو ما همونطور که میدونین این هفته داریم در مورد دوران پسابرجام صحبت کنیم و موضوع من اصلا پسابرجام امروز میخوایم از اثرات برجام روی زندگی اقتصادی و معیشت خودمون حرف بزنیم ببینیم بالاخره حالا که پاشو از روی شیلنگ صادرات نفت ایران برداشته آیا بالاخره میشه جوری بشه که ما حس کنیم داریم توی یکی از بزرگترین کشورهای صادرکننده کننده نفت زندگی کنیم. یا همچنان قراره با استانداردهای جیبوتی و جزایر سلیمان که هنوز هم با ما قهرن آشتی نکردن روزگار بگذرونیم. پس همین ابتدای برنامه سلام و عرض ادب داریم خدمت کلیه مقامات لشکری و کشوری و می‌خوایم ضمن خدا قوت گفتن به این بزرگان همینجا ازشون آجزانه تقاضا کنیم یه مقدار جمع جور بشینن کنار این سفره‌ای که پنج شده یه گوشش هم ملت جا بشن بشینن دیگه. چی میشه مگه؟ نه چی میشه؟ جمع‌تر جمع‌تر جمع‌تر خیلی متشکرم. خیلی چیکی خایون خانمه دختر خانمه ها خب پسر ما راستش فکر می‌کردیم فقط بعضی از مسئولین مملکت خودمون در مورد میزان محبوبیت خودشون در بین مردم دوچار توهمن دیروز راستش خوندیم دونالد ترامپ یکی از کاندیداهای های ریاست جمهوری آمریکا که خب حتماً به خاطر اظهارات عجیب و غریبش معرفه حضورتون هستن توی این برنامه بارها را جبهش صحبت کردیم توی یکی از میتینگ های انتخاباتی خودش این آقای ترامپ میاد میگه که در بین هوادارانش به قدری محبوبیت داره به قدری محبوبیت داره اگه همین الان بره تو خیابون یه نفر با تیر بزنه چیزی از آرای انتخاباتیش کم نمیشه ایشون خودش این حرفو زده یعنی انقدر آدم محبوبیه که همین الان بره اسلحه در بیاره وسط خیابون یه نفر بکشه هیچ اتفاق نمیفته انتخاب میشه یا از آراش کم نمیشه حالا والا به خدا ما دیروز همینجوری داریم فکر میکنیم الان دقیقا یعنی چی این حرف الان یعنی دونالد ترامپ از هوادارانش تعریف کرد یا ترور شخصیتیشون کرد الان چی شد الان چیه مگه طرفداراش چه هن که حاضرن یه قاتل که تو خیابون به مردم شلیگ میکنه رو هم بره مثلا رید جمهور بشه نمیدونم والا حال کسی چه میدونه شاید هم راست بگی. اگه برای همین اظهار نظر و نگاهی که به رعی دهندهاش داره یه بی درصد از رو از دست نده خب احتمالا به خاطر تیرندازی و آدم کشتان هم خب چیزی از دست نمیده دیگه خدا هممون هم رو بخیر کنه یخ یخ <Thirty flights and vegetables> یخها ها یعنی آخه. یه چی میگم شما آخه. یه چی میشنوید یخیه تو این, یخ... یخی. این ویسکیه اصلا دندونام <تصفح> خیلی یخ کرده خیلی هم میچسبه آه... نوشه جان حالا اینجا جان. هوا خیلی اوکیه بنکوه رو ببینم ده درجه بله ده درجه بازم هست هوا قربون شما خدامس گربون شما. شما اون سرمایه کانادا رو فقط اه... مگه بشه با همین این دنی های مجاز الکولی رد کرد و گذروند بله بله برو بالا به سلامتی خودت و بقیه چنونده ها ما همینجا خب تو بسته دست بالمون بسته استیم و نمیرفتیم بالا نوش آقا شما که حالا تو کانادا بودین و گفتین یخ و ویسکی و این حرفا دارین حالشو میبرین اما یه خورده که بیم پایین تو آمریکا این آب و هوا این دور زمانه یعنی واسه خودش آقا قصه ای داره من نمیدونم یعنی تو این یکی دو روز شرق امریکا اصلا ترکیده از فرد برف و بوران اصلا یه وضعیتی ما هزار ماشاالله کم هم نذاشته یعنی کشته دادن متاسفانه خرابی دادن ماشینا هم تپوت تپ و تپ میخورن به هم تا کمرم که باید بری تو برف ای بخوای راهپیمایی که چاز کنم برف نبردی کنی 80 سانت برف خیلی نزدیک 1 متره من نمیدونم یعنی الان اصلا بعید نیست یهو یه امام جمعه یه فلان دره از توابه بهمان دره بیاد مثلا رو منبر رو خدا رو شک کنه از این همه بلایی که داره سر کفار آمریکایی میاد. خلاص برف نگو بلا بگو. خیلی وضعیت بده یعنی طبیعت آقا داره با تمام قدرتش از ما آدما انتقام میگیره منطقیه که یادش بمونه. همین چند هفته پیش بود قدرت‌های طبیعت خرابکن جهانی توی پاریس سر دو خط بیانیه صد ساعت تو سر کله هم زدن آخرش معلوم چی شد چیکار کردن. ای بابا، ای بابا ای طبیعت عزیز، شما کوتابییا تو خدا شما کوتابییا ببخشید ما خیلی مخلصید. سلام ریچارد هستم از کره جنوبی چند روز کل کل هوا گذاشتی خواستم بهت بگم اینجا هفته پیش رفت منهای چهه فرداش او. اومد منهای 25 و الان هم ساعت تقریبا 12 و نیمه ظهر هوا منهای سیزده درجه است الان شب میره منهای 25 و گفتم بگم پرچنبا بالاتره حرمونت کل کله دیگه ریچارد ریچارد واقعا ایرانی بعد خیلی جالبه خیلی اسم قشنگی هموطن ایرانی با اسم ریچارد اونم از کره جنوبی زنیم بزه این خودش ها خیلی اتفاق عجیب و جالبیه و اصولا همین خبر هواشناسی شما رو تحت ها قرار میدادگه شما با سرما بی سرما پرچمت کلن بالاست خیلی ممنونم از تماس ببین آقا ما تا کجاها مویرگی شنونده داریم ما ولی خداکیلی چکل کلکل. چلکی آقا امرو چند بود اینجا بگی امرو چند بود بگیین اگه کلکل حال اینجوری بگیم دیگه. چقدر؟ سه سه درجه دارد. بالای سه نه بالای سه. بالا بود جدی بالا بود بالای سه سه درجه برو الان موزیکو برو ولش کن ولش کن چه کاریه چه کاریه بخیان خانم آقایون شما اگه تو شهرهای بزرگ زندگی می کنید می بینید که تراکم جمعیت توی شهرتون چقدر زیاده، ها؟ در حالی که مثلا یه وقت می بینید با مثلا یک ساعت رانندگی به جای می که خشaba، آباس، با صفاس، ادماش اصلا یه جوری فرشن. بعد جمعیتو که نگاه می کنیم می بینید در حد هیچیه. اذا این بحث توی برنامه تلویزیونی هم مطرح شده بود عباس آقا آخوندی وزیر مسکن و شهرسازی هم در زمینه لب دریا و جمعیت لب دریا یه سری حرفای جالبی داشتن گوش کنید در کنار دریا 4 و ده همه نفر در کیلومتر مربع ساکن داده خب همه جای دنیا لب دریاشون در واقع پر تراکم ترینشونه ما لب دریا مون کلا از سکنه خالی شده راست میگن دیگه منتها مسئله اینه که اگه ما سکنه لب دریامون رو زیاد کنیم با این ارادت و عنایت خاصی که خب به محیط زیست داریم کلا زباله ریختن در طبیعت رو یک فریزه برای خودمون میدونیم برای دریا و ساحل متصفانه اتفاقی بدی میفته اینه که به نظر ما بهتر همون فاصله جمعیت ها از دریا حفظ بشه چه کاریه واگرنه اضافه می‌بینیم مثلا بعد چند سال دریای خزر تبدیل میشه به بادلاغ خزر از ما گفتن بود خلاصه گفتم لب دریا دلم لب دریا خواست. به به لب دریا رو می‌خوایم آقا حالا با جمعیت یا بی جمعیت. گفت اون گرفتن سراغ برنامه امروز یک شنبه چهل بهمن 94 چون دیروز آقا من اشتباهی گفتم خب گفتم یه شنبه سوم بهمن خب اشتباه لپیه دیگه پیش میاد حالا امروزم اگه بخوایم بر همون منوال بریم جلو امروزم یک شنبه چهل بهمن 1094 با شما هستیم با برجام و اقتصاد و معیشت نبرد تنگاتنگ یارانه ها و دولاره ها و در عصر بدون تحریم بیانیگه شماره 971 بدانید و آگاه باشید که باز شدن شیر های نفت به این معنی نیست که از فردا یارانه ها سه برابر قیمت های یک سوم و اختلاص ها و دوزدی ها هم به اندازه یک ارزن می شوند لاکن در نظر داشته باشید که وقتی پول بیشتری وارد مملکت شود خورنده های بیشتری هم برای آن وجود خواهد داشت و در نهایت اگر چیزی هم به مردم برسد از آن ته ته ته ته ته ته ماندگان است ته ماندگان است امزا از خوردن این همه ته بود و سوخته و ته گرفته دیگه حالشون به هم خورده های. رادیو، حس، فرد، دا، دا، آ، آی، آی. جون سلام دوست بسر قبلیم میگفت که اگه یه شب صدای من نشنبه میمیره من را نشستم فکر علا. کردم دیدم صدای من خیلی قشنگ تر از صدای شماست واست همین تصدیم گرفتم حالا که تحریما ها برداشته شد و ما آمریکا رفت جنگ شدیم شما رادیو پس رو به خاطر نادیده گرفتن استعدادای خودم سو کنم اما چون یکم مراحل قانونش طول میکشه خوب. الان حساب شب به خیر با عشق. بله م... چ... ب... چیزه الان دوست پسر قبلیتون ارتباطش چی بود با این قضیه که میخواست صدای شما رو اگه نمی‌شنید از رادیو پاستوردا یعنی صدای شما رو اگه نمیشنید میمورد یعنی ما پخش نکردیم صدای شما رو من نفهمیدم چرا ما رو باید سو کنین یعنی همون جریمه کنین مثلا چرا دلیلش آقا من نمیم شما کی زنگ زدی اصلا من نادیده گرفتم چی شد ما کی صدا شما رو پخش نکردیم بعد شب خیر اونم با عشق چی میگه این وسط برنامه این شب غیر شما رو کجای دلمون بذاریم من نمیدونم رابطه اینا چی بود دیگه حالا به برجام و پسا برجام دیگه نمیدونم احتمالاً حرف شما صحیحه خیلی متشکرم از تماس این هفته از شما سوال کردیم که به ما بگین با لغو تحریم‌ها و آغاز دوران پسابرجام و نزدیک شدن ایران و غرب چه تغییراتی توی زندگی شما حاصل میشه. حالا این تغییرات میتونه توی زمینه اقتصادی باشه، برگشتن قیمت‌ها به دوران تحریم تحریم‌ها یا میتونه باعث گشایش یا انسداد تو فضای سیاسی جامعه باشه. فکر میکنین تو این دوران ممکنه چشممون به جمال مک‌دونالد و کی‌एफसी تو ایران روشن بشه یا نمایندگی اپل؟ تصوری از نشستن توی بوینگی که هنوز مشمای سندلیهاشو نکندن دارین؟ این هفته به ما از ذهنیتها و توقعات پسابرجامیتون بگین تا ببینیم واقعا این همه زحمت رو درد سر عرضششو داشته یا نداشته اون میگن که ظاهرا باز شده الان. بله که یعنی ملت میرن مرغ سوخاری میزنن؟ ما که نرفتیم. ملت دارن ما که نرفتیم نه. جان باز نشده، باز نشده. باز, نشده. باز نشده. خیلی متشکرم از علی به خاطر صحبت‌های تکمیلیشون. نوید گفته به نظر من دوره پسا برجام واسه نظام جمهوری و بقای اون خوب شد به من و شما چیز خاصی نخواهد رسید حتی همون مکدونالد زپرتی بله خب عوضش فروشگاهای زنجیره‌ای غذای ارزون قیمت چینی به زودی مثلا جای فلافلیا رو می‌گیرن دیگه الان اومدن یه هیئت تجاری گفتیم دیروز اومده با 600 نفر اومدن خب اینا بعد یه کاری بکنن دیگه بالاخره خدا بخیر بگذره رو لهجه‌مون تاثیر نظریه دیگه من این خیلی نگرانم مجتبا گفته آقا لغو تحریم ها باعث شد خانومم اجازه بده من برم موهام و بکارم حالا موندم اگه دوباره تحریم بشیم تکلیف موه های من چیه ای آقا ای آقا مویی که ریخت دیگه ریخت حالا شما به زور رفتیم مو کاشتی حالا دوباره تحریم بشیم هم نیاز نیست شما کاری بکنی دیگه. یه ما تو هوای تهران با اون بنزین های آلوده نباش. مریم گفته آقا ما تحریم رو تونستیم لغو کنیم اینشالله در آینده نزدیک بتونیم این پیامک های تبلیغاتی همراه اول هم کنیم والا با این پیاماشون ببینیم حالا چی میشه دیگه اتماعا زریف و عراقچی و اینا باید بفرستیم برن شرکت همراه اول بر مذاکره. سخت ها ولی شدنیه بعد صادق پارسی گفته من انتظارم اینه پراید بشه همون قیمت اولیش بنزین ه حسن نباشین دیگه چیز دیگه یه لازم ندارین بگیم شاه برگرده بگیم کلا آخوندو برن اصلا انقلاب اصلا تعارف نکنه چیز لازم داری بگو برگونه فرشید منافی سلام علیکم راجب فرجام حرف میزنی همه چی هرج شده من تو انگلستان زندگی میکنم و قیمت بنزین بسیار بالا دست این اخوندا درد نکنه چه فرجامی به به به به به خیلی ممنونم از تماس شما ولی فرجام نیست برجامه اولش بی داره کلا فرجام و برجام و سرانجام و اینا کلا چند تا کلمه‌ای بود که تو این چند وقته خیلی همه جور کنارو هم استفاده شد اینه که سوی برداشت ممکنه پیش بیاد دیگه اونی که توافق کردن اسمش برجامه دیگه فرجامو سرانجام و اینام که نتیجه و عاقبت و اینجور چیزا میشه ولی شما از توی انگلیس آقا من نمیدونم برجام به شما چه ربطی داره آقا پوند پوند انگلیس همیشه گرونه من نمیدونم چرا انقدر پوند شما گرونه همیشه گرونه بنزینم هم همیشه اونجا گران بوده هیچ ربطی به برجام نداره الکی خودتو با ما قاطی نکن بگو ماها رو با هم کجا می‌بریم ولی ممنونم که تماس گرفتید ب از فیسبوک که کامنت کندیم اینستاگرام رو میخونیم بعداً می‌خونیم برای بچه‌ها اینستاگرام و ایمیل ما password@radiofarda.com بعد امضا ها کو این همه امضا میکنن ملت شهرام سامی امزا. من قرار بود در ایمیل, ایمیل. اس بله خواهش اه... همش تقصیر شهرامه هر اتفاق بدی در برنامه بیفته از این به بعد تقصیر شهرامه. از الان گفته باشم تا برنامه هزار برنامه همینه هر اتفاق بدی در برنامه بیفته هر سوتی هر مسئله ای هر مشکلی هر توپقی من بزنم تقصیر شهرامه. خوب شد؟ الان شما راحت شدین الان. من راحتم. من الان اینجوری خیلی راحت. <تصفح> من همیشه راحتم. <تصفح> پس فردا.com ایمیل ما 20420618741520420733595555 شماره اس ام اس ماست نمیدونم کسی اس ام اس نمیزنه یا ما اس ام اس رو نمیگیریم چه جوریه میزنه کسی اس ام اس نمیزنه الکی نخونیم خودمون رو خسته نکنیم اس ام اس نمیزنه اس ام اس میزنن آره آره خوب ایمیل هم میزنن اس ام اس هم میزنن امضا میکنین فردا ان شاء الله فردا ایمیل ها و اس ام امضا رو فردا میگیریم دیگه فیسبوک و گوگل پلاس و ساندکلاد و اینستاگرامو که میدونید میتونید ما رو فالو کنید برمون کامنت بذارید رادیو راژیو پسفردا آیو سیاش روی آیفون و آیپد میتونید دانلود کنید صدای ما رو بشنوید و صدای خودتون رو به گوش ما برسونید تلفن های ما هم دو سف چار و بیس بیست و دو یازده بیست و چهار سد و, یک, و نو, سی و سه و We'll <music> تو روح توی بدنیم، قفستم محکم انگا کوه توی قدمیم، وقتی پیشمی تو فردی نی تو، همو میفهمی متا حرفی نزنی میپوشونم ضعف تو, تو هم ضعف و یمعن و تو تصاحم میفهمین چوکو حرف وای همو راضیم که راضی نموندفت نگفتم، یاد دادم پاش یادم دادین نی افتش، به گمون نکنیم ما به دور از اون حد ما چه خوب معلوم بحثای ما علکی نیست صداهای ما انگا نوشتنمون مثل دیالوگی که تکمیل میکنیم همو مثل پیانو بریدی، وقتی بیشتر از خودم بهمتو حواس ت سر باختم بیشترم من میشی کلافته بیا رو بازی کنیم ما اگه حسی هستش بگیم حسی که تو دل مول خیلی وقت ما بریم سراغ پسابرجام و اقتصاد و معیشت نبرد تنگاتنگ یارانه‌ها و دلارها و دلال ها در اصر بدون تحریم تو بازار ایران همه چیز روانیه قاطیه کلن یا به بایان بهتر بالا رفتن قیمت ها همینطوریه اصولا مثلا شما کاسبر میبینی یه جنسی رو تو دوران پیشابرجام خریده 1000 تومن بعد اون جنس رو تو دوران پسابرجام خواهد قایدتاً باید با یه سود معمولی و نرمال بفروشه بره دیگه منتا میبینی که دوست کاسبرمون به جای فروش جنسش در به در دنبال انباره جنسار انبار کنه. ازش میپرسید چرا میگه نگه‌می‌دارن پاسورده یهودیی ناخداای فلان ناو آمریکایی تو خلیج فارس عضه کرد بعد ناخداای فلان ناو سپاه هم در جواب اون یه صرفه کرد قیمتو کشید بالا اون موقع جنسو می‌ریزیم تو بازار یعنی اینجوری میشه که اصولا خیلی از مردم به اینکه اثرات اقتصادی ماجرایی مثل برجام تو ریز زندگی اونا مؤثر باشه یا شک دارن یا کلا باورش ندارن البته به طور کلی اینجوریه که اتفاقای بعد خیلی سری ریز میشه تو زندگی مردم مثلا همین تحریم‌ها اما رفع تحریم ها ظاهرن انقدر طول میکشه تا اثرش به منو و شما ها برسه که ظاهرن باید بیشتر بر نوه نتیجه خوشحال باشیم تا خودمون والا به خدا تحلیلگر ارشد مسائل مادی و اقتصادی تعلیق شدن آه. تحریم ها هیچ تاثیر کلانی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت چون مشکلات اقتصادی ایران ساختاری هستش و بعد از 12 تا 18 ما دوباره همون آش همون کاسه هستش ولی دست آقای اباوندارد نکنه که بعضیارو مجبور کرد که جام زهر رو بنوشن کوارای وجودشان ما با به به به خیلی ممنونم از تماس شما تحلیلگر ارشد من مسائل اقتصادی بودنا فهمیدم برجام تاثیر نداره چون اشکالات سیستمی اقتصادیمون ساختاریه آخرش هم خوبیتی که به ما از نبله انداختن برای خیلی ممنونم استاد بازم تشبیه این وره خوشحاله میکنی برای مدین ریا نباشه ماه چون این هم داریم بله اینه آرشناس این کاره سلن نبودو نو همون از هشت تا که اخبار مذاکرات هستی و برجام رو با دقت دنبال میکردن انتظارشون از برجام این بود که بعد از لغو تحریم ها شرایط اقتصادی و زندگیشون برگرده به همون زمان قبل تحریم ها مثلا دلار باز بشه 1000 تومان یا قیمت خونه بیاد پایین این صحبت ها البته واقعا در جمهوری اسلامی نمیشه زیاد روی پولای فروش نفت و پولایی که بعد از لغو تحریم ها به دست میاد برای بهبود معيشیت زندگی مردم حساب کرد. بزرگان نظام هم که خب برای دلارهای پیشرو همینج پیش پیش چاهیشو کندن اینه یعنی که خیلی هم دلتون رو صابون نزنید کمربنداتون هم که در این سالهای سخت اقتصاد مقاومتی و فشار تحریم ها سفت بستین بذارینم جو سفت باقی بمونه چون دیگه تو این دوران پسا برجا یه یکم بخواین مثلا به خیال اینکه آبی قراره به زیر پوستتون بیاد و اینا نمیدونم بخواین یه خورده به هر حال وضعیت بهتر بشه بخواید شل کنین کمربندارو ممکن خدای نکرده شلوار بیاد پایین و باز شرمندگی خجالت بشه گفتیم دیگه بگیم که بدونین از ما گفتن بود حالا شما گوش نده ببین چی میشه برای دوستم دیشب تو فیسبوک سخنرانی روحانی در مورد رد سلاحیت های مجلس رو شعر کرده بود بالاشم نوشته بود ببینیم کلید روحانی اینم باز میکنه یا نه یه شکلک خنده بعدم یه قهری زده بود که حالا تحریما رو ورداشتن مگه چی میشه و اینم برای حفظ نظام مقدسشون بود و سگ زرد برادری شغاله و این حرفها خواستم براش کامنت بذارم، دیدم بحث خیلی مفصل زنگی زدم گفتم یعنی چه تحریم از رو سر حکومت برداشته شده؟ یعنی یادت رفته حکومت یا خیلی هم حال میکردن تحریم بیشتر شه حتی ناخون به هم می زدن که جنگی هم اتفاق بیفته؟ گفت نه خیر. یادم نرفته، ولی اونم بازیشون بود، اینا همه سرطه یک عرباسن. گفتم ببین، استدلال قوی تر از این سراغ نداری. گفت نه خیر بسید که مثال بزنم از فردایی برداشته شدن تحریما اوضاع کاری بابایی من بهتر که نشد هیچ کسادم شده گفتم بابای تو تو کار صادرات واردات بود نه گفت آره تحریما رو که برداشتن یهو یه مش آدم بی تجربه اومدن دفتر صادرات بزنن هیچ کدوم من برای این مملکت قد بابای من کار نکردن و یه هایدم افتاد که بابای سارا بازنشسته سپاهه اونم از نوع رده بالا گفتم سارا میبخشی من کلا تحلیل سیاسی مشتباه بود تا منافع حکومت تو ذهنم بود یه منافع مردم الان فهمیدم بعد منافع سپاه هم وارد معامله کرد والا قریبورز غریب سلام چه خبر ها؟ سلام سلام به همگی بالا فرشید جان هیچکی از مسئولان نمیخواد مسئولیت هست از فوتبال اولمپیک رو کردن بگیره همه دارن توپ رو تو زمین طرف مقابل وزرات ورزش متولیه اول ورزش مملکت که معاونش معاون وزیر اینجوری با زرافت شونه خالی کرده و همه مسئولیت رو انداخته به زمین کفاشان و رفقا اگه موافق باشی بخشی از صحبت های آقای سجادی معاون وزیر گوش بدید. بشنوید. هیچ اختلافی نبوده اصلا. ما مطابق بودجه ای که برای فدراسیون تصفیه شده، بودجه ابلاغ شده. فدراسیون فوتبال 100 درصد بودجش رو گرفته، جزء فدراسیونی است که گرفته. راجع به مسائل بیشترش هم من فکر می‌کنم که فدراسیون فوتبال بعد پاسخ پاسخگو باشه. بله، به این میگن مسئولیت پذیری در حد لالیگا. بله، دیگه چه خبر؟ فریبرت والا امروز آقای حمید رسایی نماینده مجلس از گزارش مجلس در مورد فساد در فوتبار رونمایی کرده که فرشید خوراک برنامه های بعدی امام جور جور اشاره کرده ایشیون داره به پیشنهاد پانستد میلیونی یه مدیر باشقا به دربازبان حریب گزارش فساد به چندتا مورد مورد از جمله شخصپندی های غیر مجاز اوه. مصرف الکل و مواد مخدر و روابط نامشروح هم تو فوتبال اشاره شده فوتبال چه جوری با کی حالا به کاری نداریم آره البته <تصفيق> آجاقا رسایی آخونه نگاه میکنید خرد و پسرد چون وارا <تصفيق> چون چو خانومایی که راه نمیدن حالا هیچ جا نه توی استادیوم نه توی تیم <تصفيق> <تصفيق> ما من نمیدونم رباتون آموزش چه جوریه خب حالا آجاقا رسایی البته میگم یکی بعد به پرونده خودش رسیدگی کنه آ که با وجود این همه زوب شدگی و دلواپسی رد صلاحیتش کردن بند خدا برای انتخابات مجلس بگذریم حالا بگذریم آره تا یادم نرفته فرشی جان اینم بگم که چند روز پیش از گم شدن آروین باغری کاراتک های ملی پوش در پاریس خبر داشتیم که احتمال پناهنده شدن رو دادن برخی از سایت های داخلی امروز هم خبر آینان آره خبر داده که دو تا وکسور ملی پوش تو چین غیب شدن حالا فرانسه <تصفيق> قابل قبول پاریس و لحو لحب, و لحب و کلی برج ایسر و اینا بوابط نامشروع اینا <تصفيق> آره تو شاید بتونی کمک کنی در مورد خواهد چین تو توضیح بدی ورزشی اینا غیب شدن کلا الان این پیدا نیستن آره. ولی چی... من چی بگم من فقط الان 30 روزه من فقط میتونم با... بگم با توجه به خب تو اون نقطه و هر تو چین همه جور موجود زنده ای رو میخورن من فقط میتونم آرزو کنم بنده خدا رو کسی نخورده باشه دیگه همین دیگه بیشتر از این از دستم بر نمیاد حالا ان برگردن دیگه گم شدن جمعیت زیاده تو شلوغی گم شدن احتمالاً گم شدن آره ممنونم ازت تا فردا بود خدافظی می‌کنیم تا فردا خدا نگاتوار تو تیم با سلام بی سی یک شب را ضمن تحییر از بازدید سه میلیون نفر گردشگر از کشور قطر با دو میلیون نفر جمعیت با مروری بر سرخط مهمترین نناوین خبری ساعات گذشته آغاز می نباویم. ملاقات مقام معظم رهبری با نیروهای سپاهی بازداش کننده ملوانان آمریکایی و از سوال کارشناسان که خب اینشالله دیدار معزمله با حمله کنندگان به سفارت عربستان که ای میشه؟ به جاماندن یک کشته در درگیری های انتخاباتی شهر شوش خوزستان و پیشبینی کارشناسان عرصه بکش بکش که دفعات قبل تبلیغات انتخاباتی کشته نمیداد اونجوری بود خدا این دفعه به بخیر کنه؟ و ممانعت دریابانان ایرانی از قاچاق 500 بلبل خورماوی ایرانی به خارج از کشور و خوشحالی جمع کسیری از پرندبازان داخلی از این رویداد با این مضمون که بلبلی که به داخل رواست به خارج غاچاقه مهمترین اناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند اینک مشروع خبرها با چهچهی همکارم بلبل با سلام متخصصان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با استفاده از روش بیدردی القایی توسط هیپنوتیسم موفق به انجام عمل جراحی فک شدند در همین رابطه یکی از کارشناسان امور بیدردی کشور زمین تبریک این موفقیت علمی از متخصصین خواست ترتیب اتخاذ کنند که این گونه بی‌دردی ها و بی‌حسی ها را به توان برای مسئله مختلف مردم استفاده کرد تا به دیم وسیله زندگی آنها شیرین تر شود و افزود مثلا همین الان اگر میشد داوطلبان رد صلاحیت شده مجلس را با روش بیدردی الغایی توسط هیبنوتیزم درمان کرد بسیاری از مشکلاتی که از جانب این افراد برای کشور به وجود می‌آید قابل پیشگیری بودند پایان مرشور اخبار ای تشکر از توجه شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر و بلبلی دیگر خدا نگهدار اخیش ناموشیدین از برنامه امروز زیه ای آقای میکروفون طلا من کاری ندارین من دارم میرم همینطوری خالی داری میری بلبل بول؟ یعنی وا... خب چیکار کنم دارم میرم دیگه آقا قبلا نه یا استعفا میدادی موقع رفتن یا شکایت نامه تحویل میدادی یا میزدی میزدیدی ای حالا میرم. یه بارم من حالم خوبه با چیز مشکل ندارم شما کوتاه بیاین دیگه آقای میکروفون طلا باشه با باشه میگم بلبل واسه پسآورجام چی بپوشیم حالا ایو، به <تصفيق> این جایی دوتیم چرا الان میگین به من میکروفون تلا <تصفيق> شوخی کردم ها. پس آورجم همینایی که تنمونه در نیارن حالا لباس جدید پوشیدن بخوره تو سرمون کن. من این تنظر شما رو آقای میکروفون تلا خیلی درک نمی کنم ببخشیده که هم به سمت بیمزگی میره ببین بل ببین بول. بول. همین چیز هست که یکی رو میکنی اکبر میکروفون تلا یکی رو میکنی بول بول. بره با بره اله با. خیلی کار داری تا برسی به ما بره بره باشه شما خوبین بله معلومه. من رفتم شب خوش شب تو هم خوش بره با باری با بای دکترت برس جانمونی من نمیدونم یاری یارو دکتره این بلبل چجوری تحمل میکنی شوخی هم بایش نمیشی کرد با اح بی جنبی. سلام فرشید این قضیه انتخابات من یاد زن گرفتن خودم انداخت که اون زمان جدو. ماهانم میگفت انتخاب انتخاب توه تو هرکی دوست داری انتخاب کن ولی تو اون چارتایی که من برات انتخاب میکنم که میگم اینا سلاحیت زندگی با تو رو دارم من در نهایت که انتخاب انتخاب مادرمه کدا پس به رو خود انتخاب کن و ما بریم بگیریمش دیگه چون ما که کاهی نمیتونیم انجام بدیم جزی. هم. آرش ای سی. هستم از معظم لام مشکلش همینه یه حس مادرانه ی عجیبی داره به ملت میگه از مثلا از بین همینا که من انتخاب کردم انتخاب کنین حالا ما نفهمیدیم چی شد بالاخره زن گرفتی راضی بودی نمیدونم آقا بعد به خیر شدی بگو اگه اینجوریه خب ما هم بریم رأی بدیم روی رهبرمونو زمین نندازیم دیگه آقا گفتم مخالف های نظام نظامم رأی بدن خیلی سه یه صد دارم به خدا بعد باذ میگن حکومت با مخالفینش بحث اینجوریه دوستان حتما در جریان هستین چند وقت پیش سپاه دو تا قایق نظامی آمریکایی رو که به اشتباه وارد آب‌های ایران شده بود توقیف کرد و بعد از یه روزم البته توفنگدارای آمریکایی رو آزاد کردن و ماجرا ختم به خیر شد همینجا تو همین برنامه‌م هم چندین با راجع بهش حرف زدیم دیروز سردار سلامی جانشین فرمانده سپاه توی برنامه تلویزیونی حدود یک ساعت و نیم شرح این عملیات غیر ممکن رو که فقط با اتکاب قدرت و ایمان سپاه انجام شد، خیلی همچی با آب و تاب تعریف کردن که بخش‌های از اون رو بشنویم. اونا واقعاً گم شده بودن. نیروهای آمریکایی گم شده بودن. آمریکایی‌ها بسیار دستپاچه، عصبی، شتابناک هیجانی، خارج از کنترل به تعبیر خودشون out اف وارد صحنه شدند. اوتاو کنترل رو کیف کرده این خدایی سردار ماشالله زبان انگلیسی کاملا مسلط و اینه ولول ول خلاصه امریکایی ها مثل سربازه عراقی تو این فیلم های دفاع مقدس بود که تلویزیون نشون میداد اونجوری بودن نریخته بودن به هم حالا بچه های سپاه چه جوری بودن اینجوری بودن بچه های ما بسیار آرام و با قلب های مطمئن در انتظار حوادثی بودند که ممکن بود اتفاق بیفتد ماشاءالله به سپاه ما خلاصه آقا سردار کل این ماجرا رو با چنان تعلیق ها و پیچ و تاوی تعریف کرد چنان بیادرجش زیاد کرد خدای ما فکر کردیم آمریکا با تمام قوا حمله نظامی کرده بوده به ایران بعد بچه های سپا با دو تا قایق موتوری مثلا رفتن کلن تومار مار آمریکا رو در هم پیچیدن و برگشتن بابا سردار جان دو تا قایق نظامی کوچیک بوده را گم کردن حالا خراب شده هر چی شده اشتباهی مادن تو آب‌های ایران بر بچه‌ها سبام رفتن سر هر وقتشون دیگه چرا بزرگ می‌کنی قضیه رو ای. شاید من بخوام بگم برای اولین بار از بعد از جنگ جهانی دوم تا به امروز که تو فنگداران دریایی آمریکا در معرض یک چنین ماجرایی قرار می‌گیرند عظمت نظام ما بای بای بای. در این استثناءات روشن میشه برگهایی از تاریخ که کمتر قدرتی قادر به خلق اون هست جهان در حال رؤیت تکمین یک قدرت جهانی جدید در قلب نقطه ای که قلب جهان هم محسوب میشه و اون حقیقتا جمهوری باد. اسلامی ایران هست بلم کن با بس دیگه تا باش از این اتفاقهای نادر اینجوری پیش بیاد که یک قایق گم کرده راهی تو آبهای ایران خراب بشه سردار بتونن با نشان دادن اقتدار سپاه کره زمین رو کلن تحت تاثیر قرار بدن. به خدا اگه ما بخیل باشید شنوندگان عزیز توجه فرمایید شنوندگان عزیز توجه فرمایید دلاور مردان جنبرکف نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عملیاتی دشمن شکن و قرور دو فروند قایق نظامی دشمن زبون را که در آبهای نیلگون خلیج فارس راه خود را گم کرده بودند پیدا کرده و به اصارت خود درآوردند پس بدانید ای ابر قدرت ها حتی اگر با دو قایق و ده توفنگ دار هم باشید باز هم حریف دلاور مردان و شیر دلان سپاه نخواهید شد و چارهی به جز زانو زدن و تسلیم شدن نخواهید داشت این پیروزی شیرین و غرورآفرین آفرین مبارکتان با دلنگرانی ما از آدمی است. که میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشند حمران ملک موتی، سلام، چه خبر ها؟ سلام، فرشی جان، سلام همگی امروز خبرسازترین چهره هنری تو ایران سالار عقیلی بود و تمام خبرگزاری به حضور عقیلی تو شبکه منوتو تیوی واکنش دادن چیا گفتن؟ چی بوده ماجرا کلا؟ از بخشخش از صدای این مساه رو با هم بشوییم بعد من توضیح مییم بنویم خیلی خوش اومدین سالها لی عزیز منم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز و محترمی که الان دارن برنامه رو می و خوشحالم که در خدمت شما و مردم عزیز هستم. مرسی ما هم که شما دعوتمون رو قبول کردین مرسی. و اومدین اینجا. خوش بله ما میخوایم خیلی مستقیم بریم سراغ تور اروپا که چند روزی از در حال برگزاری کجا بودین تا الان یعنی تو کدوم کشورها کنسرت داشتین؟ یه مقدار راجع به اونها برامون توضیح بدیم بله بخشوی از مصاحبه سالا رقیلی با شبکه منو شدین من ما این مصاحبه با شبکه های خارجی ممنون نشده کامرا چرا بذا شد مدتی که و سخت دنبال این قضی است هر بنه پخش تیزر فیلم سسینمایی مصاحبه همکاری خلاصه با این شبکه ها وثش ممنول کاریه اما الان در مورد سالار عاقلی موندن که چیکار کنن چون از طرفی شب منتو یوی جزوی شبکه های ماننت محسوب شده میگن وابسته به سلطنت طلباس از اون طرف صدای سالار عغی هر رففت 5 نوبت داره روی تیسراج سریال معمایشا پخش میشه دفتر موسیقی امروز اعلام کرده تا برگشت عغیلی هیچ اظاره نظری نمیکن تهیهکنه. نده سریال معماهای هم گفته که فعلا نامه ای برای حفظ صدای عقیلی از طرف تلویزیون ابلاغ نشده فکر کنم تو هفته آینده همچنان این ماجرا ادامه داشته باشه بسیار ما صبر میکنیم سالو رقیلی برگرد ایران ببینیم چی در انتظارشه البته خب بنده خدا فقط راجبه تور کنسرت های اروپا و اینا ظاهران حرف زده از بلده. آلبوم جدید چه خبر کامران تازه چند ساعت پیش خبر اومده بود کامران تفتی بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون که آخرین کار تلویزیونیش سریال میکایل بود، اولین آلبوم رسمیش رو چند روز آینده منتشر میکنه به اسم عکس زمسونی تهران. تفتی قرار چند تا تک آهنگ هم اجرا کرده اما با این آلبوم رسمان دیگه قرار کار خوانندگی هم بکنه. مبارکش باشه. ممنونم ازت کامران عزیز. با خدا حفظی می‌کنیم و می‌ریم که از کارهای کامران تفتی از همین آلبوم به اسم باج رو می‌شنویم. بیا برگرد کنار من که دنیام به تو محتاج همون میشم که تو میخوای تو فکر این یه جور باجه نبودم قدر اقلات نبودم اون که میخواستی من هر کاری واسد کردم که پای عشق من واسی چقدرات داری میریم چقدر این قصه قفی جناب عزیز دیروز در خبرها شنیدیم که رئیس کانون پرورش فکری گفته مقوله اسباب بازی از دقدقه های آیت الله خامنه‌ای است خب به همین مناسبت ما هم دعوت کردیم از کارشناس امور مقام معظم رهبری برنامه جناب آقای حاجاقاین <تصفيق> دل مومنین. بله <تصفيق> که بیان برای ما بله، یه توضیح بدن در این باره البته ایشون مثل همیشه بله، با دوم مبارکیشون یعنی فرزند دلبندشون نسفی بله، جان تشفیا بله، بله، بردن و ما در خدمتشون هستیم مؤمنين. بله بله هم نسبل مؤمنی بله، بله حاج آقا بفرمایید که چیه این ماجرا چرا انقدر ایشون روی اسباب بازی حساسن قضیه چی بله خب در هر صورت باید بله. فرمایش کنیم که اسباب بازی یک مغوله مهمه که درمون بله. اون فوان تفل با آن گت هفلونه و همین و رفتن باعث میشه که شخصیت تفل تشکیل بشه دیگه البته ما خودمان در زمان تفلانگی از با تخمه بود واقعا آج تخمه بله دیگه بله اصلا سفارش شده اگر یک مشت تخمه به مؤمن بدهی او را یک ساعت بنده خود کرده اگر دو مشت بدهی دو ساعت اگر سماشت بدهی و با باشه حالا حاجقه حالا بس تو تخمهی نکنین بیزمت حاجی اینقدر بس بس یعنی مسئله اسباب بازی مهمه که رهبر مملکت باید مثلا روش حساس باشه وقت بهش اختصاص بده ایده فرشید یعنی... واقعا مهمه ها بله. من هنوز یادمه یه روز من بچه بودم تو حیات داشتم موچه ها رو دونه دونه با ذرهبین جزغاله میکردم که یهو بابام اومد گفت کار میکنی بچه خجالت بکش مورچه ها رو که اونجوری نمیکنند مورچه را باید زیر پا له کرد اینجوری ببین پسر جان اینجوری عجب آخه چه جوون بوده آره ولی خاطرات چه داشت به حرفای ما نستی ای, ای راست میگی فرشی خاطرم رو جا به جا تعریف کردم عجبا. ببین داشتم با ذره بین ها رو می که ددی اومد گفت بچه جان بیا به جای این بازی های ددمنشیانه با این اسباب بازی جدید که برایت خریده هم بازی کن بیا آره اینجوری بود دیگه باری که الله خوب هست حاجی از بچگی برای تو اسباب بازی میخریده بله ما از همون کودکی خیلی حساس بودم روی تربیت این شکرپاره آفرین حاجی باریکالو. بله حالا اون اسباب بازی چی بود ببین خو همینا میخواستم بگم دیگه فکر میکنی چی بود این نه بود که ددی رفته بود یه شوخه یه کاتاکلوف بود از در اخبار خل... من آورده بود برای <تصفح> بازی این... دیگه واقعاً حاجی واقعاً دیدیم کمی مه غوسترن هنهونه اون سه بیگ کار گفتیم حیف بلا استفاده بمانه بابا اون شبیه گردنش شتر مرغ بود دادی تو گردن اسب خب توصیه شده که به فرزندان خودت سوارکاری بیاموزید واقعا ما پدر نمونهی بودیم روح واقعا. پدرت رحمت فراوان باشه پس. یعنی حالا نصفی بازی نه. میکردی یعنی جواب میداد یعنی نه بابا نه؟ چی جواب میداد به درد بازی های من نمیخورد که چه بازی میکردی؟ من خاله بازی دوست داشتم فقط فرشی جون بله. میبینید بچه بیچاره ما رو. هی ایشان را به سمت موجی بازی سخمه دادیم این میرفت با خاله مردم بازی میکرد خب من از اولش بره. به کانون خانواده علاقمند بودم دیگه دادی بره. ولی بچه ها فشید جون این اسباب با بازی ما همیشه مسخرله کردن و... همون چوبه رو یعنی دیگه آره به خاطر همین تو خاله بازی ها من همیشه نقش زنگ در خونه رو ایفا می کردم می, بینی. می بینی. چقدر هنرمنده خیلی رالی... هم هنر تا بازیگر سراغ داره بتونن نقش زنگ در رایفا را کنمن ب... ای بابا بله نصف الان خوبی بله تو دیگه... الان اوکی آره بابا خوبم بله بله. البته الان هم که میخوابم باید چوبم تو بغلم باشه تو خوابم ببره آخ آخ آخ. یعنی هنوز واب سی برشه تا برادر منافی نگفته نمانه ما هم معمولا شب هایی که بالاخره نوزبه لوح به بستر میریم تنه همان درختی رو بغل, بغل میکنه که دید. این نسل مؤمنین شخش رو بغل میزنه دیگه ماش شاده ما به این خانواده پس خیلی مهمه این اسب و بزرگی دوران کودکی بیخود نیست رهبر مملکت روش انقدر حساسه دی حالا خیلی حساسه اون بر برنامه بحثه تخمه شد معوض کرد نداره چما ما اینجا قراره جان من که ندارم اینجا که دیو ول بچه ها بیرون سدیو تخم دارن فرتو فراوون برو را میدازن بله تخمه کل هم دارن اون هاجی جان، با با. بفرم. خب، بفرم تخمه اکبر دستچین چی اون رو حاجی اونم پسته است شما مطمئنی فرق بین بلده. تخمه و پسته رو میدونی اصلا چیه دادی دادی بیا بابا این فرشی تخمه چه میدونه چیه بیا با با با بریم من خودم فش میکنم بیا بریم بریم تخمه بابا بریم از اسرائیل چیزی دارنمایم بریم یه تخمه امونی بزنیم بفرمایید حاجی اون لیمو امانی بابا اینا دیوانش کرده راستاً آقا بریم قسمت بعد شد بریم پدر در پسر رفتم ما به زندگی خودمون برسیم یکی از سمرات لغو تحریم ها اینه که دولت برای جبران کسی بود جش لاقل یه مدتی دست از سر مردم بر می داره یعنی سر این یارانه ها دیوون همون کرده انقدر که به نت گذاشتن و آه و ناله کردن و تحلیل های اقتصادی و علمی به خوردمون دادن که چرا به نفمون یارانه نگیریم و این صحبت ها به خدا آدم ما به ما پامش شد میفت همون چندندغاز بگیره خودش بعدش میاد خجالت میکشید انقدر که چشم بزرگان مملکت دنبال این پول بود. از اوورم حکومت که میدید مردم انصراف نمیدن از گرفتن یارانه ها یه جوردی که جیب مردم هر چی گرفته بودن در میآ بود جیم های رانندگی رو, رو چند برابر می کرد مالیات ها رو زیاد یاد می آب و برق برقنام شب میخواابید و صبح ها میشید میدید دو برابر شده میرفی بانک میدید و با بانک با خودش از ابابت به های مختلف پول برداشت از یه بعضی. خلاصی ینی ما فکر می زرنگیم که انصررااف نمیدیم از یارانه ها. ولی تو نگو بزرگان نظام از ما زرنگ بودن بودندن کللا با شکلت های مختلف از توجیب ما بود. حالا شاید شاید پول نفت که راحت ازشون برسه و پولای بلوکه شده‌شون که آزاد بشه یه مدت حالا بی خیال جیب مردم بشن لا یه چند سباهی مردم نفس می‌کشند دیگه همینم بهتر از هیچیه. پغلاده پیش خون از آرمان امروز با توجه به سقوط تاریخی قیمت نفت زده بود که نفت ارزانتر از شیر و آب سلیتر نفت یک پفک نمکی خب خسته نباشیم با این وضعیت تحریم باشیم سنگین ترین به خدا شیطونه میگه بزنیم زیر برجامو هم بچسبیم به بمب اتم ها اه. همین شهروند با اشاره به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن سه تن دیگر در جریان یک درگیری انتخاباتی تیتر زده بود که درگیری خونین نامزدهای انتخاباتی در شوش. حالا خوبه همه نامزده از یه جناح رقابتی نیست، ای رقابتی بود که احتمال 30 تا کشته داده بودن تا الان. والله. می‌دونید تهران با اشاره به اعزام نیروهای نظامی آمریکا به افغانستان و سوریه امروز تیتر زده بود که آمریکا برای مصادره پیروزی بر داعش خیز برداشت بابا این داعش بذار شکست بخور نابود بشه اشکال نبا کل افتخار پیروزیش با جمهوری اسلامی روسیه والا به خدا امشب هم تموم شد اما همونطور که شادروان حسین پناهی گفته جا است چیزی جایی که هیچگاه دیگر هیچ چیز جایش را پر نخواهد کرد نموهای سیاه و ندندانهای سفید شبتون خوش قرار بود پاییز برگردی گفتی که حالت باز خوب میشه من تو همون خیابون ایستادم کجایی پس داره قروب میشه میترسم از نگاه این مردم باید نذاری مشتمون باشه یه جوری پیدا کن منو شاید آخرین پاییز من باشه دارزم از تو میرسه چرا نمیرسی نگاه من دل واپسه چرا نمیرسی سردم تو بارون میخوام دستامو خواه کنی از گریه با چطر خوده منو جدا کنی